گرامیان درود بر شما فایل آوایی دوازدهم از کتاب برهانه الیت برهانی در رد وجود خدای ادیان و روز جزا نوشته نون فخر رو با هم آغاز می‌کنیم صفحه 118 عنوان هفته 11 جبر و اختیار جبر یعنی چه اختیار یعنی چه ناباور دیر کردی مومن در حال مرور پاسخی بودم که برایت آماده کردهام و همین باعث شد که نفهمم به کجا می روم. قدم زنان از اینجا دور شدم و دوباره برگشتم. به هر حال پاسخ خوبی برایت دارم. ناباور مشتاقم که بشنبن. مومن انکار نمی کنم که شاید ما انسانها در جاهایی بنا به علل محیطی و یا روانی خود را مجبور حس کنیم و ناچار باشیم دست به انتخاب مشخصی بزنیم که چاار ای از آنها نداریم. اما ما در بزنگاههایی با تمام وجود حس می کنیم که می بدون هیچ اجباری دست به انتخاب بزنیم. اختیار یک امر شهودی است که آن را با تمام وجود حس می کنیم و قابل انکار نیست، هیچ انسانی نمیتواند بگوید که بین جبر و اختیار تنها جبر است که حکم فرماست چرا که لحظات اختیار در زندگی ما کم نبوده و نیستند حتی اگر ظاهرا علیت و یا تعین حکم کنند که تصمیمهای ما از قبل مشخص و محتوم است باز هم نمیتوانیم آنچه را که در درون خود وجدان میکنیم انکار نماییم حس اختیار یک حس کاملا شهودی و غیرقابل انکار است و بر همه فرضیه پردازی ها میچربد. ناباور که حرکاتش نشان میداد اصلا با حرفهای مؤمن موافق نیست خواست چیزی بگوید که مؤمن ادامه داد اجازه بده مثالی بزنم. مثلا من با توجه به سلامت جسمانی و یا میزان خستگی پاهایم و نیز مقدار پولی که در جیب دارم ممکن است در انتخاب بین پیاده روی تا خانه و یا سوار اتوبوس شدن و یا کرایه کردن یک تاکسی به جمیع جهات توجه کنم و نهایتاً یکی را ترجیح دهم ترجیح من و انتخابی که می کنم ریشه در عوامل درونی و بیرونی مختلفی دارد و اگر چه ممکن است تصور کنم انتخابی آزادانه انجام داده ام اما از قبل معلوم بوده که کدام مورد را انتخاب میکنم و به قول تو اگر کسی شناختی کاملی نسبت به جهان درون من و جهان بیرون من یعنی ذهنم و محیطی که در آن زندگی میکنم میداشت میتوانست انتخاب مرا پیش بینی کند در این مورد من با تو موافقم که گرچه در مواردی فکر میکنیم انتخابمان آزادانه است ولی در حقیقت مجبور به انتخاب می‌شوی اما مواردی هم هست که اصلاً چنین نیست مثلا من در این لحظه می توانم انتخاب کنم که از دو برگه کاغذی که در مقابلم قرار دارد برگه سمت چپ را بردارم یا برگه سمت راست را من هیچ دلیلی برای ترجیح یکی بر دیگری ندارم و هر کدام را که انتخاب کنم انتخابم کاملا آزادانه خواهد بود و هیچ جبر بیرونی و درونی در کار نیست نه جهان درون من و نه جهان بیرون من هیچ هیچکدام نمیتوانند مرا به یکی از این دو انتخاب مجبور کنند ناباور من فکر میکنم یک سوء تفاهم بزرگ پیش آمده این سوء تفاهم منحصر به تو نیست و شاید بتوان گفت که بسیاری از فلاسفهی که بر علیه جبر گرایی استدلال میکنند نه تنها این سوء تفاهم برایشان پیش میآید بلکه اصرار قابل توجهی دارند که محکم به این سوء تفاهم بچسبند گویی این سوء تفاهم تنها برگ برنده ای آنهاست و اگر آن را رها کنند دیگر بازی را باختهاند مومن چه سوء تفاهمی ناباور در ابارت جبر و اختیار آنجا که جبر محصول دیترمینیسم و یا انیمیشن سازی است کلمه جبر به معنی جبر روانی نیست یعنی به این معنی نیست که ما علا میل باطنی خودمان مجبور به انتخابی می که عوامل مختلف بر ما تحمیل می کنند. یعنی به این معنی نیست که ما در روح و روان خود مجبور بودن به اکراه را حس می کنیم. البته شاید کلمه جبر آنجا که در مبحث قضا و قدر به کار می رود همان معنی را داشته باشد که منظور توست یعنی همان معنی جبر روانی را داشته باشد در مسئله تقدیر گفته می شود که مثلا خدا از پیش تصمیم می سرنوشت ما چه باشد و چه واقعی در یک زمان مشخص برایمان پیش آید یا مثلا خدا تصمین میگیرد ما جزو هدایت شدگان باشیم یا جزو گمراهان باشیم یا مثلا خدا یا کاهنات تصمیم میگیرند پسری در زمانی مشخص تومار فرعون را بپیچد از اینجا به بعد هیچ کدام از تلاش های فرعون برای جلوگیری از این واقعه موثر نمیافتد و سرنوشت محتوم او او رقم میلش به وقوع می‌پیوندد یا مثلا کسی که می‌خواهد از عجل خود فرار کند هر تصمیمی که می‌گیرد عاقبت عجلش فرا می رسد و نهایتا با انتخاب‌های خودش که هیچ چاره‌ای از آنها ندارد و گاه همراه با بیمیلی آنها را انجام می‌دهد به آغوش مرگ معودش می و مجبور است برخلاف خلاف میلش و با اکراه عجلش را بپذیرد. در گذشته بسیاری تصور میکردند و هنوز هم بسیاری تصور می کنند، نوشته ما چنان نوشته شده است که حتی در صورت آگاهی از آن نمی توانیم آن را از پیش رو برداریم در اینجا، جبر به این معنی است که ما علرقم میل ترونی و با اکراه روانی مجبور به انتخاب گزینه‌های پیش رو هستیم که همگی ما را به سمت سرنوشت پیشنوشته سوق می دهند و تلاش برای فرار از آن بیفایده است. اما جبر آنگاه که محصول قانون علیت می شود هم کاملا متفاوت در اینجا اصلا صحبت از این نیست که قانون علیت ما را مجبور به انتخابی می کند که نسبت به آن اجراح داریم و خلاف میل باطنی ماست. جبر در اینجا به این معنی است که طبق قانون علیت انتخابی که ما با کمال میل انجام می دهیم پدیده است که از پیش محتوم است. یعنی میل باطنی ما. و ای که در ما شکل میگیرد و عمل ما همگی پدیده هستند و لذا محصول علیت بوده و متعین میباشند یعنی خلقتشان از پیش تعین یافته است بنابراین شاید بهتر است به جای کلمه جبر از کلمه جبر علی استفاده کنیم تا هر دو خلقت علی را در بر بگیرد هم خلقت به واسطه سلسله علت و معلول ها و هم خلقت به شکل انیمیشن سازی. استفاده از کلمه جبر جز به معنای جبر علی موجب خطا در نتیجه گیری خواهد شد. اگر من بگویم شیر سلطان جنگل است، شیر از گاو به دست می آید، پس سلطان جنگل از گاو به دست می آید به این است. که من انایت نکردم کلمه شیر به دو معنی به کار رفته است و این سقرا و کبرا چی در من مقالطه اشتراک لفظی است در سقرا لفظ شیر به یک معناست و در کبرا لفظ شیر معنای دیگری دارد همچنین است کلمه جبر در جبر و اختیار اگر جبر را به معنی جبر روانی در نظر بگیری و بگوییم ما گاهی در بزنگاه انتخاب اصلا احساس نمی‌کنیم مجبور باشیم این برداشت، برداشتی اشتباه از کلمه جبر و دوچار مغلطه اشتراک لفظی شده‌ایم. اگر قاعده دیترمینیسم یا تعین برقرار باشد، اینکه تو کدام برگه کاغذ را با میل خودت، یعنی میلی که در درون تو به‌وجود میآید از روی میز برمیداری از پیش متعین است. چه این کار را با احساس اجبار انجام دهی و چه این کار را با احساس آزادی و اختیار انجام دهی هیچ تفاوتی در متعین بودن این پدیده ایجاد نمی کند و هیچ خللی در قاعده علیت وارد نمی نماید. در لحظه ای که تو تصمیم نیرفتهی کدام کاغذ را برداری این تو هستی که نسبت به آنچه در آینده رخ خواهد داد ناآگاهی تو ناآگاهی خودت را به این حساب میگذاری که واقعا از قبل متعین نیست که نهایتا چه تصمیمی میگیری و کدام کاغذ را انتخاب میکنی این درست نیست که ناآگاهی خود نسبت به آینده را به حساب نامتعین بودن آینده بگذاری اگر دیترمینیسم برقرار باشد در همین لحظه نیز متعین است که تو نسبت به کاغذ ها چه تصمیمی خواهی گرفت مومن پس با توجه به نوع اعتقاد تو به جبر آیا می توانی به من بگویی که تو با میل خودت اینجا نشسته ای یا نه ناباور این سوالت هم ناشی از درک غلط جبر الی البته که من با میل خودم اینجا نشستم و هیچ احساس جبر و اکراهی در روانم نیست سوال صحیح این است آیا این که من با میل خود اینجا نشستم از ازل متعین بوده یا نه؟ آیا پدیده نشستن من آن هم با میل و رقبت تمام یک پدیده مخلوق پدیده های قبلی و یا مخلوق انیمیشن ساز است یا خیر؟ پاسخ این سوال بر اساس برهان علیت این است بله یا مخلوق پدیدهای قبلی است و یا مخلوق مستقیم انیمیشن ساز است عنوان اگر جبر باشد ارزش‌های اخلاقی چه می‌شود بین نتایج علیت و ارزش‌های اخلاقی طرف کدام را بگیریم مومن پس ارزش‌های اخلاقی چه می‌شود با این حساب از روز ازل معلوم است که هر کسی به کدام اعمال اخلاقی متمایل است و مرتکب کدام اعمال غیر اخلاقی خواهد شد. پس فردی که زندگی اخلاقی پیش میگیرد هیچ فضیلتی به دیگران ندارد. آن هم که مرتکب جنایت می شود نباید شرمنده باشد. نابابر. این اینکه پیگیری نتایج مترتب بر قانون علیت، بر اخلاق چه خواهد بود موضوع بحث ما نیست بحث علیت نسبت به بحث اخلاق مقدم است و نمی توان گفت که چون اخلاق مهم است پس علیت و تمام نتایج مترتب بر آن را ندیده میگیری البته من فکر میکنم حنایت به جبر علّی که محصول برهان علیت است اگرچه روی قضاوت ما نسبت به یکدیگر اثر میگذارد و مانع از نفرت بی و واکنش افرادی در مقابل علایق سلایق و امیال و اعمال غیر دلخواه یکدیگر میگردد اما لزوما منجر به اشاعی بی اخلاقی و بی تفاوتی ما نسبت به اعمال غیراخلاقی اخلاقی نمی شود همواره حس نفرت از یک عمل غیراخلاقی که در آن آزار به نفوس دیگر مشهوده است ایجاد می شود و شرمندگی شخص بی اخلاق در پی مشاهده این حس نفرت دیگران به وجود خواهد آمد. حس نفرت و در پی آن حس شرمندگی اولین عوامل جلوگیری کننده از عمل غیر اخلاقی هستند. کسی که به یک حیوان آزار می‌رساند، اگرچه عملش متعین است اما موجب نفرت دیگران می شود و نفرت دیگران موجب شرمندگی او و جلوگیری از بست عمل غیر اخلاقیش می دردن. همه اینها اگر به وقوع بپیوندند متعین هستند اگر کسی ما را آزار دهد دانستن قوانین علیت و باور به جبر علی مانع از ایجاد درد در ما شود. درد به هر حال ایجاد می شود و ایجاد درد موجب اکسل عمل ذهنی عاطفی و بدنی ما نسبت به عامل ایجاد کننده می میگردد یکی از این عکس های ذهنی ما همان حس غریزی نفرت است که ما به آن ارزش گذاری منفی نسبت به عمل غیر اخلاقی می گوییم مؤمن جامعه ای که تو در نظر گرفته ای جامعه ای است که مفهوم و نتایج فلسفی برهان علیت و نیز متعین بودن امیال اراده ها و افعال ما به طور کامل برای اعضایش جا نیفتاده و آنها گاهی منطقی عمل می کنند و گاهی قریزی. ناباور منظورت از گاهی منطقی عمل می کنند و گاهی قریزی چیست؟ مومن زمانی که اعضای این جامعه می از وقوع دوباره جرم جلوگیری کنند، برای شخص مجرم مجازاتی در نظر می گیرند تا در زمانهای بعدی نه در خود او و نه در دیگران میل به جرم شکل نگیرد. و یا اگر شکل گرفت اراده به انجام جرم شکل نگیرد اما از طرف دیگر همین اعضای جامعه بر اساس غریزه خود دچار حس نفرت نسبت به عضو مجرم می شوند و این باعث ایجاد حس شرمندگی در مجرم میکرد. ناباور، اشکالش چیست مومن تا اینجا اشکالی ندارد اما اگر جامعه ای به وجود آید که اولا افراد آن همواره عقل و منطق را بر غرایز مقدم دارند و ثانیاً نتایج فلسفی برهان علیت و جبر علی چنان در ذهن آنها جا افتاده باشد که دیگر نتوانند نسبت به مجرمین احساس نفرت و کینه داشته باشند و مجرمین هم دیگر نتوانند نسبت به اعمالشان دچار شرمندگی شوند آیا فکر نمی کنی که چنین ای به لحاظ اخلاقی بسیار آسید پذیر خواهد شد؟ ناباور. اگرچه به نظرم این نتایج فراگیر شدن چنین نگاهی به برهان علیت موضوع است و نتیجهش برای جامعه هر چه باشد، نباید جلوی قبول حقیقت جبر علی در جهان را بگیرد. با این حال اجازه بده یک دقیقه به آنچه گفتی فکر کنم. ناباور از جایش بلند شد و به طرف یخچال شیرینی ها رفت و با دو تکه کیکی که گرفته بود برگشت و گفت شروع کن تا من سر فرصت فکر کنم. چند دقیقه بعد ناباور اینطور طور کرد من فکر می کنم اگر فلسفه علیت برای تک, تک افراد جامعه از پیر و جوان کاملا جا بیفتد و همه فیلسوف شوند چنین ای بعضی از واکنش های را از دست می دهد. مثلا یکی همان چینه نسبت به افراد مجرم است که به کلی از بین می روید. زیرا همه میپذیرند آنکه میل و انجام جرمی داشته و سپس اراده کرده تا انجامش دهد و انجامش هم داده امکان نداشته که جز این اندیشه ها و رفتار از او سر بزند. پس نمی از او چینه بدل بگیرند اما نفرت نسبت به اعمال مجرمانه از بین نمی روید. نفرت از اعمال مجرمانه محصول درد و است که از آن اعمال آرز می شود و ربطی به باورداشتن فلسفه تعین و یا جبر اللی ندارد. از طرفی افراد مجرم نیز با آگاهی از همین فلسفهی اللیت و نگاه بدون کینه دیگران دیگر دوچار شرم نمی شوند. اما با توجه به عواقب و مجازات های بعدی و نیز احتمالاً در اثر بیداری وجدانشان دچار تعصف و حسرت می گردن. پاورقی در اینجا کلمه وجدان یعنی همزاد پنداری یعنی اینکه در پندار خود وجود و هستی و ذات خود را جای وجود و هستی و ذات دیگری بگذاریم تا رنج و درد و احساسات و عواطف او را حس کنیم. به بدین معنا بزرگترین قاضی عمل اخلاقی است ادامه مطلب تاسف از اینکه چرا آنها باید کسی باشند که در بین این همه انسان همه پدیده ها چنان پشت هم قرار گیرند که آنها مایل به انجام آن جرم گردند و حسرت بابت اینکه تمایل و اراده آنها برای خودشان مجازات و برای دیگران رنج به آورده است. منظورم این است که فکر نمی کنم نسبت به اعمال غیراخلاقی ای تفاوتی ایجاد شود. مؤمن آیا فکر می کنی این احساس نفرت جامعه از جرم و در کنارش تأسف مجرم از اینکه بخت و اقبال باعث شده او مایل به انجام جرم و عامل انجام جرم شود بتواند به اندازه کافی جلوی اعمال مجرمانه و غیراخلاقی را بگیرد؟ ناباور نمیدانم که میتواند یا نه و نمیدانم که در شرایط گفته شده چه احساسهای دیگری از جامعه رخت برمیبندد و نتیجه اش چه خواهد شد من فعلا فقط دو گمان در سرم دارم اولا گمان میکنم احتمال عملی شدن چنین چیزی که همه جامعه صد درصد فلسفی فکر کنند و فلسفه جلوی بروز بعضی از احساسات همه آنها را بگیرد بسیار کم است سانیان گمان می کنم اگر همچنین شود لزوما نمیتوان گفت که جامعه غیر اخلاقی می شود چنانکه پدر و مادر یک کودک که برای توجیه خطا های کودکشان به دنبال علل و عوامل آن خطاها میگردند پس از هر خطایی که از کودکشان سر میزند بدون آنکه ذره‌ای کینه نسبت به خود او داشته باشند با مجازات او تلاش می کنند تا او را از تکرار عمل بدش باز دارند و معمولاً موفق هم می شفند. کسی چه می‌دانند شاید جامعه‌ای که گفتی بیشتر شبیه یک خانواده شود که در آن کسی کینه کسی را به دل نمی‌گیرد و اعضای آن نسبت به هم مهربانتر و بی‌آزارتر هستند شاید چنان جامعه‌ای از این هم که هست بهتر شود به هر حال اینکه نتایج فلسفی علیت چه به روز جامعه می آورد موضوع بحث ما نیست مومن عرضش اخلاقی چه می شود ما انسانها برای اعمال اخلاقی خوب ارزش قائل هستیم اگر اعمال اخلاقی خوب جبری باشند و تکلیف سرزدنشان از انسان ها از روز ازل معلوم شده باشد دیگر چرا باید برای آنها ارزشی قائل شد؟ نباور اینکه باور به جبر اللی منجربه از بین رفتن احترام به اعمال خوب می شود یا نه نمیتواند در پذیرش نتایج منطقی قانون الیت تأثیری بگذارد اینکه تصور و احساس ما نسبت به افعال نیک اخلاقی چیست اثری بر پدید بودن امیال اراده ها و افعال اخلاقی ندارد و این حقیقت که اینها همگی پدیده هستند کافی است تا اینها را مشمول قانون علیت بدانیم و هر مشمول قانون علیت باشد وقوع و خلقتش به تمامی جبری و در اختیار علت اول و یا انیمیشن ساز خواهد بود احساس ما نسبت به اختیاری و انتخابی بودن اعمال اخلاقی نیک هر چه باشد احساس است و نمیتواند تعین کند حقیقت اعمال و اراده ها چیست احساس خوب و بد نسبت به اعمال دیگر اعضای جامعه بشری در طی تکامل انسان ها و اجداد انسان ها به وجود آمده و توانسته است بر مناسبات اجتماعی انسان ها و اجداد انسان ها چنان تأثیر بگذارد که منجر به حفظ و بقای جوامع بشری شود همین کافی بوده تا این چنین احساس به وجودشان در صاحبانشان و نسل بعدی صاحبانشان ادامه دهند. وجود این قبیل عواطف و احساسات تنها به ادامه بقای آهاد و جوامع بشری کمک می کند و حیات انسان را که به شکل اجتماعی است دوام می‌بخشد. اما معین نمی که حقیقت پشت پرده چیست. شاید بتوان گفت یکی از عوامل حفظ زیست اجتماعی ما انسان ها همینگونه عواطف نسبت به اعمال و رفتارهای هم ماست که موجب می شود آن اعمال را به دو دسته اخلاقی و غیر اخلاقی تقسیم کنیم. اخلاقی یعنی آنها که حس خوبی در ما ایجاد می کنند و غیر اخلاقی یعنی آنها که حس نامطلوبی در ما ایجاد می کنند. سنگینی همین قضاوت ما، طبعاتی دارد که نهایتا موجب اشعائی افعال نوع خوب و کم شدن افعال نوع بد از سوی اعضای دیگر جامعه ما می شود و این به پایستگی زندگی ما می انجامد. منطقی نیست که بگوییم چون احساس خوبی نسبت به اعمال اخلاقی خوب و عاملان آن داریم پس ناچار باید قانون زیربنایی و بنیادینی همچون علیت نقض شده باشد. کم نیستن احساسات قریزی که به ما دروغ میگویند تا فقط موجب بقای نسل ما شود. لذا نباید کشف حقیقت را موکول کنیم به اینکه احساسمان به ما چه میگوید. همانطور که گفتم ما اگرچه با شعار عقلگرایی و منطقی بودن شروع به بحث و بررسی یک موضوع جهت کشف حقیقت میکنیم کنیم ولی معمولاً در وسط راه هر جا که نتایج منطقی بحث مورد علاقه ما نیست سعی می کنیم که به نوعی سر خود را کلاه بگذاریم اینکه یک مدعی فلسف ورزی و حقیقت جویی تنها از ترس از بین رفتن سیستم غذایی و تنبیه و مجازات در جامعه و با نگرانی از اینکه مبادا ارزشهای اخلاقی و انسانی فرو بریزد به نتایج برهانی همچون برهان علیت پشت کند و آشها را بگوید که نمیخواهد این نتایج را بپذیرد مبادا که در آینده احتمالا اعمال خوب پاداش نداشته باشند و جرایم کیفر نبینند یکی از مصادیق انحراف از مسیر حقیقت جویی و سوق یافتن به سمت های روانی است اگرچه من دلایلی را مطرح کردم که نشان دهم اعتقاد به تعین لزوما منجر به روادبی اخلاقی نخواهد شد اما به فرض هم که بشود به هر حال پشت زدن به نتایج ناخوشایند اخیّت ما را به حقیقتی که دنبالش بودیم نمیرساند و تنها از حقیقت دور می‌کند هرچند منجر به ایجاد یک جامعه احتمالا اخلاقگراتر و بهتر شود وقتی بحث بحثمان را شروع کردیم قصدمان رسیدن به اخلاق نبود بلکه میخواستیم حقیقت را بدانیم اگر حقیقت تلخ این باشد که تعین یا جبر بر همه امیال، اراده ها و افعال ما حاکم است. و لذا پیامبری که است روز جزایی وجود دارد، سخنی خلاف واقع می گوید و از آن گذشته. اخلاق نیز در جامعه محکوم به نابودی است، باید طبق قرارمان این حقایق را قبول کنیم و درست نیست به واسطه ترس هایی که معلوم نیست تا چهت موجه هستند، مسیر بحث را ببندیم و بگوییم بهتر است از اینجا جلوتر نرویم تکیه بر اینکه نفس ارزشمندی انتخاب اخلاقی باید باعث شود بین دو فرض جبر و یا اختیار فرض جبر را کنار بگذاریم به این معنی نیست که فرض جبر یا تعیین صحیح نیست بلکه به این معنی است که اعتقاد داریم باید آن فرضی را صحیح دانست که باورش، احتمالا زندگی اخلاقی تری را برای انسان ها به ارمغان آورد و لازم است فرضی را که شاید باعث نزول اخلاق جامعه گردد نادرست پنداریم این روش هرچه باشد روش حقیقت طلبانه ای نیست و از یک نقطه ضعف بزرگ بشر در مسیر حقیقت طلبی حکایت کند. در هر صورت در بحث ما مهم این است که الیت یا به جبر تعیونی و یا به جبر انیمیشن ساز منتهی می شود و این یعنی عامل همه چیز همان واجب الوجود است. اگر خدای ادیان همان واجب الوجود علیت باشد از آنجایی که خودش تمام امیال، اراده ها و افعال ما را ایجاد می کند و همگی مخلوق آن است لذا طرح مسئله جزا، پاداش، بهشت و به جهنم از جانب آن واجب الوجود غیر قابل قبول است. آن خودش اراده کرده که ما به چه میل کنیم، چه اراده کنیم و چه عملی انجام دهیم. اگر هر کدام از اینها لایق مجازات یا پاداش باشد، باید خودش را مجازات کند و یا به خودش پاداش دهد. که این غیر ممکن است پس خدای ادعا شده در دین اسلام و یا هر دینی که نظام جذاب و پاداش اخروی دارد آن واجب الوجود برهان علیت نیست و تنها افسانه است که مدعیان پیامبری و ارتباط با آن واجب الوجود از خودشان ساختند اینکه آنها چرا چنین داستانهایی از خود ساختند مهم نیست و به بحث ما مربوط نمی شود این که خوب بوده یا بعد هم برای ما مسئله نیست. تنها مسئله این است که آنچه گفته اند ساخته و پرداخته خودشان و یا محصول مشترکی از فرهنگ زمانه ایشان و خلاقیت ذهن خودشان بوده و ناچار می تواند پر از خطا باشد و لزومی به باور و اطاعت برنامه ها و دستورات آنها نیست. مومن. راستش این هفته من کمی عجله دارم و باید زودتر بروم. هفته آینده بحث را ادامه خواهیم داد. گرامیان همینجا در صفحه 128 فایل آوایی دوازدهم از کتاب برهان الیت رو پایان میدیم تا درودی دیگر بدرود.